سلام بچه های فروشگاه تهران امروز 25۵۴۴ تو همین سالگرد تسیییس نوین مااس و سالگرد یک کنیم سال یک فروشگاه از آقایان رستمی آرولا آقا و اودیرضا به شدت ممنونم به خاطر همراهی این مدت قطعا بدونین که حضور شما توی فروشگاه برای همه ما تو قضی قوت قلبیه و یه جورایی، علمدار و پرچمدار نووینال ماست که کل کشور اون فروشگاهه که به همت شما تو این یک سال و نیم گذران عمر کرد و برای همه ای ما اینجا تو قزوین افتخاره اول از همه از طرف خودم و بعد هم کل بچه های شرکت تو قزوین از شما تشکر میکنن خیلی از زحمات ما گردن شما بوده که این زحمات قطعا دیده میشه امیدوارم که تو ادامه مسیر هم افتخار در کنار بودن شما رو داشته باشیم و کمک کنید که بتونیم هر روز بهتر از. دیروز باشیم. براتون آرزی موفقیت میکنم. قبراغ و سرحال باشید.